هر انسان روی کره زمین یا هر در هر جای دیگری با دو پله سر و کار داره یک پله عقل که این پله شامل علم و دانش، فن و تکنیک، راه و روش و پند و نصیحت پله دیگر پله عشق هست که زوق و شوق، وجد و سرور، حیرت و تعجب ایسا و فداکاری، مهر و محبت و این چیز هست. با سعی و کوشش نمیشه عاشق شد با صرفن زوق و شوق نمیشه یک مهواری رو به فضا فرستاد یک دنیا دنیای ابزار میتونیم اون دنیای ابزار بگیم و یک دنیای داریم که دنیای بی است دنیای دل، دنیای عشق. تمام کارها، حرکات انسان، یک نمود عملی و فیزیکی داره، یک بود کیفیتی داره بود کیفیتی کارایی که انسان انجام میده، کار دلی، اونو دل تعییم میکنه همه مثلا سر کارشون میاد، ولی چی با علاقه مندی سر کارش هست، چی با عشق کاری رو انجام میده، مثلا زیادی در دنیا عبادت انجام میدن در عباداتی هستند اما کیفیت این عبادت رو چه چیزی تعیین میکنه کار دل اون چیزی رو که در مورد انسان به دل و به عشق ارتباط داره اسم اون رو میگذاریم دنیای بی یا به طور اختصار میتونیم بگیم دنیای عرفان عرفان عملی یعنی اون چیزی که میخوایم با استفاده از این دنیا عرضه بکنیم و ارائه بکنیم مربوط میشه به دنیای بی‌ابزاری یا دنیای دل حالا ممکنه که گفته بشه مگر با همچین دنیای کاری هم قابل انجام هست عقل گوید شش جهت حد دست و بیرون راه نیست عشق گوید راه هست و رفته ان منبارها. در دنیای عشق هم یه کارهایی به طور عملی قابل اجرا هست لذا وقتی میان میگیم که فرادرمانی رشته ایست عرفانی یعنی یک نمود عملی داره که میتونیم ببینیم که حتما یک کاری انجام شده که اسمشو میذاریم فرادرمانی اما در آن از هیچ علم و دانش و فن و تکنیکی هیچ کدوم استفاده نشده یعنی بدون ابزار این کار صورت گرفته افراد ابتدا به ساکن لازم هست که آشنایی عملی با هوشمندی حاکم بر جهان هستی یا با شعور الهی آشنایی عملی پیدا بکنن تا به صورت عملی این آشنایی پیش نیاد همه چیز در قالب حرفه یعنی میشه ارفان نظری لذا افراد طی این دوره مفهوم اتصال رو بهش میرسن و به دنبال اون به دنبال پیدا شدن اون اتصال و متصل شدن مبادرت به کار عملی میکنند و اون هوشمندی الهی رو در جریان عمل به کار میبرند و به طور عملی متوجه میشن که این هوشمندی این شعور وجود داره این میشه پایه کار برای هر کسی که میخواد این مسیر عرفانی رو طی بکنه بعد از اون با ایمان و یقین نسبت به هوشمندی و شعور الهی کارها ادامه پیدا میکنه است وقتی ما فهمیدیم که شعور الهی وجود داره نسبت به وجود خودش یک مسئله مسائل و مشکلات ما حل شده دیگه چون گفته میشه روشن به که آفتاب است آن نور که خانیش تو محتاب. با نگاه کردم به نور محتاب ما پی به نور خورشید بیبریم با پی بردن به شعور الهی پی به وجود خودش هم میتونیم ببریم و وصل به اونها انجام میشه چون این ارفان متحکیب وصله به اتصاله چیز چیزی نداره که فرزند در یه دوره کسی بخواد حفظ کنه کسی بخواد یاد بگیره اتصال که انجام بشه اون کار صورت میگیره و در واقع چیزی غیر از اتصال در این عرفان وجود نداره در عرفان عملی چیز جز اتصال نیست و ما اعتقاد داریم که کمال به ریاضت نیست همونطور گفتم پایه و اساس تعالی انسان اشتیاقه. انسان اگر مشتاق باشه اون رحمانیت آمه در اختیارش است و میتونه استفاده کنه و انسان در واقع برای این روی زمین نیست که به خودش زجر بده بلای سر خودش بیاره شکنجه‌ای به خودش وارد بکنه کافیه که مشتاق باشه وقتی که اون اشتیاق وجود داشت حکمت الهی جواب می‌کنه که طبق قانون باستاب فرد موزد اشتیاق خودش رو بگیره این موزه اشتیاق همون کمال همون تعالیست همون رسیدن به ادراکی به رسیدن به برحال اشراق و روشن است نام عرفان حلقه از انتحاب روی این گذاشته شد که مبتنی بر استفاده از حلقه های متعدد رحمانیت عام الهی هست که در هر حلقه ما قادر میشیم کاری رو در جهت تعالی انجام بدیم یا سری از حلقه ها در خدمت این مسئله است که اگر انسان افتاد بلندش کنه مثال بزنم یک بچه حتما زمین میخوره وقتی زمین میخوره بزرگتر دستشو میگیره بلندش میکنه میزنه پشتش میگه بچه جون معاذب باش جلو پاتو نگاه کن این وزیفه بزرگتره و بزرگتر با وجوده که میدونه بازی گوشی بچه و سهلنگاری اون بازی زمین خوردنه شده ولی باز دست رو میگیره و بلندش میبه ما طی مراحل مختلفی ثابت میکنیم که بیماری مسئله زمینی بیماری چیزی نیست که خدا به انسان بده ته مراحل متعددی ثابت میکنیم که بیماری است و است که انسان به وجود آورنده اون هست و اینکه که ما میگیم در مواقعی که بیماری و مشکلی پیش میاد بگیم خدا بد نده خدا هرگز به انسان بد نداده و بد نمیده خب بعضی از تسیلات این حلقه ها برای اینه که انسانو بلند کنه حالا انسان مریض شده قطعا بر اساس اشتباهات خودشه که مریض شده قطعا اینو ثابت میکنیم اما راه اینه که زیر بقلشو بگیرن بلندش کنن و بگن جلو پاتو نگاه بکن این راه رو گذاشتن در مورد فرادرمانگر شدن بلا استثناء افراد میتونن فرادرمانگر بشن مگر کسی خودش نخواد وگرنه اصلا مردودی نداریم چه خودشون سالم باشن چه ناسالم باشن چه معلول باشن زمانت خیر چرا چون فاکتور فرد که تو این اتصال که براش پیش میاد دست کسی نیست ما میدونیم که اگر شاهد بشه حلقش جاری میشه اتصالش بران قرار خواهد بود و همطور که خدمتون کردم هفتاد درصد بیماران گذشت از نوع بیماریشون درمان میشن سی درصد خیر. کار دنیا علم بررسی واقعیت هاست حالا این بررسی واقعیت ها به شکل های مختلفی صورت میگیره یکی از این شکل ها برسی آماریه در هر مورد فرادرمانی هم این مورد صادقه و آماری که گرفته بشه اون آمار نشون میده که کارایی چقدر چطوریه دوره یکی که فرادمانگر ها اومدن به عنوان کسانی که ببینن چه خبره؟ رفتن انجام دادن برگشتن آمارشون ما میگیریم خب یعنی اینا هنوز جز ما نشدن که شما اگر آمارشونو بگن شما خب اینا فردرمانگر خودتون و اینا دیروز جز شما بودن امروز اومدن جز ما ولی در اینجا در واقع خیلی هم اصررار دارن خیلی هاشون که بگن که، مثلا نشد ولی خب شده دیگه آمارهای رو که میدن هفتاد درصد حالا میانگین یه چیزی هم خودمون مکمش میکنیم هفتاد درصد درمان نشون میده سی درصد درمان نداریم سی درصد درست، یه درصدشون شاهد نمیشن خب یعنی شاهد نمیشن که میگین بیترف باشید ولی اونها تجزیو تحلیل علمی میکنن وقتی تجزیه علمی بکنن توی اتصال قرار نمیگیرن تو حلقه که تعریفطوره قرار نمیگیرند، و طبیعتاً بی‌نصیب میمونن. یه درصدی طبق قانون تولد و مرگ اصولا بایستی جواب نگیرن. یعنی هیچ سیستمی در عالم هستی راندمان 100 درصد نداره. و این مسئله رو هم همینطوریه. برای اینکه اگه راند 100 درصد درمان بشن مرگ متوقف میشه و همچنین سیستمی در عالم هستی سیستمی که راندمان سر درصد بده نمیتونه وجود داشته باشه ولی به هر حال از این سی درصد ما بعضی موقع های درصدش رو میتونیم برگردونیم. با تغییر در بینشه هاشون که متقاعد بشن اینجای وادی علمی نیست و تفسیرشون رو بزارن کنار شاهد بشن هفتا درصد درمان که میدونید بدون هیچ ابزاری بدون هیچ مسیله ای یک بحث قابل توجه یه نسبت به پزشکی رایج که حتما بایستی مورد توجه قرار بگیره بیمار هیچ کاری نباید بکنه نه تخیور نه تصور نه تلقین هیچ کاری فقط تنها کاری که انجام میده اینه که میشه تماشاچی ما میگیم شاهد اگر حواسش جمعه میتونه چشم باز اگر حواسش جمع نیست با چشم بسته این رو پیگیری بکنه بهتره ببینه این اسکن اسکنهای رو, رو که رو بدنش انجام میده و بیماری های رو کشناسایی میکنه که به صورت درد گرفتن، تیر کشیدن، زربان زدن، تشننوج و سرد و گرم شدن و دیدن نور و رنگ و قیره بو اینها در واقع فرد رو بیماری رو شناسایی میکنه و بعد شروع میکنه به حل و فصل بیماریش فقط باید همین رو پیگیری از آن درمان داریم تا ممکنه چندین جلسه هم بعضی از بیماری ها چندین جلسه طول بکشه به ماه و یکی دو ماه هم بکشه ولی بیمار روند بهبود خودشو در هر جلسه میتونه پیگیری بکنه یعنی کار کوری نیست فقط بیطرف باشه شاهد باشه هیچ خصوصیت ویژه نیست که داشته باشه که بگیم کمک میکنه به این ماجرا، کمک میکنه به این مسئله خصوصیات فردی بیژگی های فردیه چه فرها درمانگر و چه بیمار هیچ ارتباطی به این مسئله ندارن چرا؟ چون این بحث رحمانیت الهیه و رحمانیت الهی ارتباطی به خصوصیات فردی افراد نداره حتی گناکاری و این پاک بودن و ناپاک بودنشون و به هیچ کدوم از اینها ارتباطی نداره و این رحمونیتی است که شامل حال همه است توی تجاربی که وجود داره تقریبا میشه گفت که روی همه نمونه های تجربه شده و جواب هست و های گروه پزشکی و روانپزشکی پاسخ داره یعنی دیگه اصلا هیچ نمونه نیست که ما بتونیم بگیم نمیشه به دو دلیل یکی تجربه یکی به دلیل تجربه و یکی به دلیل اینکه وقتی با شوره عله کار می امکان هر چیزی هست و ما اجازه نداریم که بگیم نه نمیشه. باید ابتدا تست بکنیم ببینیم میشه یا نمیشه. اما تجربه که تجربه که به دست اومده نشون داده که ما انوا اقساشی داره داریم، حتی آرتروز داریم یعنی شده که جنبه مکانیکی داشته. خصوصا در زمین روانپزشکی که قطعا معالجه و درمان کار خیلی پیچیده است در اینجا وجود داره و انجام میشه یه مسئله هست که تو تئوریامون ارائه دادیم بحث عدم همفازی شعوری عضو دهنده و گیرنده است اینا از نظر شعور اوزوی که میاد یه شعور داره اوزوی که میخواد این بگیره یه شعور داره اینا با هم همخوان نیستند همپاز نمیشن و به بعد از یه مدت شعور گیرنده شعور اونو پس میزنه شعور اون اینو پس میزنه و علا همه کارهایی که صورت میگیره در پیوند احضا میبینید که امکان پس زدن عضو وجود داره حالا در بعضی از ها در کوتا مدت پس زدن عضو مشهود میشه در بعضی طولانی مدت بزن همه چند با در فرادرمانی بخشی هست که مخصوص این افراد و هنفاظ شدن شعور سلولی رو در واقع انجام میده و افرادی که عضو می پیوند کلی و غیره و اینها در واقع یک هنفاز شعوری می شن. حتی که عمل بایپس قلب انجام می دن، که رگ از پاشون می توی قلب کار می باز هم ممکنه که دچار عدم هنفاز شعوری بشن <clears throat> با وجود که این از یک بدنه که با استفاده از این مسئله فاز شدن شعور سلولی صورت میگیره و امکان یا احتمال پس زدن کاهش پیدا بکنه. دنیا عرفان با دنیا شعور سر و کار داره. و چون همه ذرات عالم هستی از شعور و هوشمندی ساخته شدند در واقع صرفاً اون دیا با دست بردن تو کیفیت شعوری هر عنصر، اون عنصر شکل میگیره. این مسئله فقط تفویزی است که این تفویض خب حالا یا توسط من یا توسط مربی هایی که داریم چون افراد پدیده چند دوره خودشون مربی هم میشن میتونن همین کار رو همین اتصال رو برای دیگران به وجود بیارن پس یه تئوری داره که شوره الهی چی هست رحمت عام الهی چی هست و پس از اون اتصال که کار انجام میده نه خوندن کتاب نه اینه که نوشته ای به ما کمک بکنه بشوی ارا اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد این تعفیض به دنبال مکتوب کردن یک سوگننامه انجام میشه این سوگننامه صرفا مبتنی بر استفاده صحیح و درست و انسانی از این هست و در واقع سررفند یادآوری این مطلب به فرد که دچار غرور و منیت نشه و مبادرت به عوام فریبی نکنه. چرا چون بعد از اینه که این قضیه رو به کار گرفت پس از یه چند تا تجربه ممکنه دچار غرور بشه و دچار منیت بشه وزایف درمانگران هست، درمانگران، بر جز هست که اطلاعات درست به افراد بدن. این اطلاعات درست اینه که این حرکت با کمک شعور الهی داره انجام میشه. وقتی پای شعور الهی به میون بیاد هیچ کاری مشکل نیست. هر قیر ممکن میشه. تعجب ماجرا از جایی ممکن شروع بشه، قوت بگیره که به توانهای فردی افراد نگاه بشه. یعنی بگن گروهی هستن که این گروه یعنی با توانهای فردیشون این کار رو انجام میدن. این اشکال ماست و مشکل ماست و جزء سوگندنامه افراد هست که معرفی درست داشته باشن تا مبادا اونها فکر بکنن که این قدرت‌های فردی در واقع اشخاص هست که منجرب بروز یا وقوع این درمان ها میشه همکنون تعداد زادیم هم از پزشگاه مون روان پزشگاه مون دارن از این مسئله استفاده میکنن به این دیدگاه ها مجهز شدن و خصوصا دوره های ما رو در زمینه فراپزشکی که اصطلاح مخصوص پزشکاب و روانشناسا و روانپزشکون هم هست برای آشنایی بیشتر بهشون ارزه کردیم و به هر حال دارن کار میکنن با این رشته انرژی درمانی چند هست که سر زبان هاست و از زمانی که پولاریتی درمانی و کار با حوزه پولاریتی انسان در دانشگاه آمریکا به نتیجه رسید و انجام شد از اونجا بعد انرژی درمانی که یا همون پولاریتی درمانی پاس دادن با دست روی حوزه پولاریتی انسان رایج شد بعضی از افراد حوزه پولاریتی قوی تری دارن بعضیا خب با تمرین هم این گسترندگی رو دو مال میکنن ولی به هر حال یه مطلب است که همه حوزه پولاریتی دارن حالا ضعیف و قوی این حوزه رو دارن خب مطمئن در بعض افراد مشخصا قوی تره چون این مسئله از راه دور نزدیک با دست بدون دست انجام میشه ازن نیازی نیست که فرادرمانگر از دستش استفاده بکنه که اینجوری تلقیه بشه که حوزه پولاریتی رو با نیروی کیانی و نیروی کهانی یک چیزه شعوری کهانی یک چیز دیگر شعوری کهانی حوشمندیه نیروی کهانی نیروی حیاته نیروی است که اونم کودش افراد حالا میان باش آشنا میشن چیزی به نام پرانایاما چیزی به این حساب می میتونن باش کار بکنن اما الزامی به استفادت دست اصلا نیست و راه دور و نزدیک هم توی این درمان مهم نیست و بود مسافت و هم متعنی است چرا چون هوشمندیک که حاکم بر این جریان هست برای اون بود زمان و مکان مفهوم نداره چون نه ماده, ماده است و نه انرژی در واقع هوشمندی نه ماده است و نه انرژی لذا بحث درمان به هر صورتی عملی است